سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان. امروز در خدمتتون هستیم با قسمت دوم داستان زیبای شاهزاده ویوین و شاهدخت پلاچیدا داستان رو تا اونجا دنبال کردیم که بعد از اتفاقات زیادی که برای شاهزاده ویوین افتاد و بعد از برگشت اون از قصر پرنده سیاه حالا در کشتی نشسته و در مسیر اقیانوس حرکت میکنه بریم ادامه داستان رو با همدیگه بشنویم حالا اون به آرامی در وسط اقیانوس پیش میرفت چون این آرامشی به کام انسانهای صبور شیرینه پس میتونید تصور کنید که این آرامش چه تاثیری بر شازاد ویوین گذاشته اون دلش میخواست در قصر پرندی سیاه باشه چون دستکم در اونجا موجودات زنده رو میدید در حالی که در عرشه کشتی سپید کاغذی کاملا تنها بود. اصلا نمیدونست چطور خودش رو از اون زندان خسته کننده رها کنه. خلاصه. بعد از مدت زمانی طولانی چشمش به خشکی افتاد. برای رسیدن به خشکی بیتاب بود. مقدر که به انتهای کشتی دوید تا خودش رو شناکنان زودتر به خشکی برسونه. اما بیفایده بود. چون هر بار که شیرجه میرفت، به جای آب در کشتی میومد. فرود می دیگه باید خودش رو به دست سرنوشت میسپرد و صبر و حوصله در پیش می گرفت تا باد و امواج کشتی رو به بندرگاهی طبیعی برسونند بعد از اسارتی طولانی در دریا در دوردست درختانی دید از دیدن این منظره ذوق زده شد درختان بلند در کناری آب روییده بودند اون به آرامی به ساحل پرید و خیلی سری در دل جنگل انبوه فرو رفت بعد از طی مسافتی طولانی کنار چشمهی با آب زلال ایستاد تا استراحت کنه اما همین که خودش رو روی علف انداخت در بین بوت های اطراف سر و صداهایی شنید یک دفعه غزال کوچک زیبایی نفس زنان رو خست بیرون پرید و خودش رو به پاهای اون انداخت و با نفس های بریده گفت آه ویوین نجاتم بده شاهزاده مات و حیران از جا پرید و بلافاصله با شیر بزرگی که به دنبال غزال بیچاره بود روبرو شد. اون فقط فرصت کرد شمشیرشو در بیاره. با شجاعت به سمت شیر حمله برد و بینشون نبردی خشن در گرفت. البته شاهزاده از رقیب سرسختش سر بود و نبرد به پیروزی اون ختم شد و شیر نقش زمین شد. وقتی شیر روی زمین افتاد سه بار با صدای بلند سوت زد. صدای سوت در جنگل پیچید حتما تا مسافتهای طولانی و دور دست هم شنیده شد شیر دیگه کاری در این جهان نداشت فقط قلطی زد و مرد شاهزاده بدون توجه بیشتر به شیر یا به سوتش رو به غزال زیبا کرد و پرسید خب خیالت راحت شد حالا که میتونی حرف بزنی لطفا فورم بگو چی شد و از کجا اسم منو می‌دونی؟ میدونی جواب داد قبل از اون که حرفی بزنم باید استراحت کنم. تازه شک دارم که تو با این همه خستگی شنیدن حرفام رو داشته باشی. مهم اینه که از بلایی که نزدیک بود بر سرم بیاد نجات پیدا کردم. غذال با همون لحن شلوول ادامه داد: بهتر حالا به پشت سرت نگاهی بندازی. شاهزاده به سرعت به عقب برگشت و در نهایت هراس چشمش به یک قول واقعا غول پیکر افتاد که با زحمت بسیار راه می و نزدیک می شد قول خشمگینان فریاد می زد می خوام بدونم چه کسی شیرم رو وادار کرده که سوت بزنه ویوین دلیران پاسخ داد من بودم می بگم که اون دیگه این کار رو نخواهد کرد با شنیدن این حرف قول نعری کشید و نالو زاری سرداد افسوس افسوس کوچولوی عزیزم حیوانک که نازنینم من هر طوری که شده انتقام تو میگیرم. غول ماری بزرگ رو از دور موچش باز کرد و در حالی که اون رو در هوا میچرخوند به شاهزاده حمله برد. ویگوگن بدون اون که خون سردی خودش رو از دست بده با شمشیرش مار رو هدف گرفت و ضربه سنگینی بهش زد. اما با این ضربه مار به غول و غول به مار تبدیل شد. این اتفاق اونقدر سری افتاد که شاهزاده رو کاملا گیج کرد. این شش بار تکرار شد تا اینکه بالاخره با ضربهی حسابی و به موقع تونست مار رو چند باره کنه. بعد تکهی بزرگ از پیکر مار برداشت و با تمام قدرت به طرف دماغ قول پرتاب کرد. قول بیهوش شد و روی لاشه شیر افتاد. در یک آن ابر سیاه زخیمی که فضا رو پوشونده بود کنار رفت و قول و شیر ناپدید شدند. شاهزاده بدون که شمشیرش رو در غلاف کنه، با عجله به طرف قذار رفت و با فریاد گفت حالا باید هواستو جمع کنی یا بدون ترس و حراس از چیزی به من بگی کی هستی و این قول بیشا خودم و شیر و مار از کجا پیداشون شده تو رو به جانت قسم بیدم که عجله کن وزال جواب داد با کمال میل میگم اما عجلت برای چیه از تو میخوام که همراه هم به قصر سبز بیای تا اونجا راه درازیه و نمیخوام پیاده برم پیادرویه خیلی خسته کننده است شاهزاده قاطعانه گفت پس راه بیفتیم. مگر نه همینجا میگذارم تو میرم قزال جوان و تیزپایی مثل تو باید از خودش خجالت بکشه که نمیتونه چند قدم راه بیاد باید به قصد برسیم هر قدر هم که دور باشه اما چون خوشت نمیاد راه بری میتونیم آهسته بریم و در ضمن راه هم صحبت کنیم غذال به شیرینی گفت بهتر منو بغل کنی اما چون دلم نمیخواد دیگران به خاطر من به زحمت بیفتن پیشنهاد میکنم خودت هم سوار اون حلزون بشی بعد با بیحالی با یکی از پاهای ظریفش به چیزی که شاهزاده فکر میکرد سنگی سیاه است اشاره کرد اون فهمید که یک حلزون بزرگ رو با سنگ اشتباه گرفته شاهزاده فریاد زد چی سوار حلزون بشم مسخرم میکنی تا یک سال دیگه هم نمیرسیم غزار گفت باز همه و فراموش کن من که خیلی دلم میخواد اینجا بمونم اینجا سرسبز و آبم صاف اما اگه جاد بودم سوار حلزون میشدم. شاهزاده علارقم میلش قزال رو بغل کرده و نشست پشت حلزون سیاه بزرگی که به آرامی به طرف جلو سر میخورد. حلزون مجبور بود با زربه هایی که شاهزاده به پهلوش میزد سریعتر پیش بره قزال بیهوده وانمود میکرد که به اون خیلی خوش میگذره و این آسون ترین سواری بود که تا اون زمان دیده بود شاهزاده ویوگین سخت خشمگین و تحمل شده بود فکر می‌کرد هرگز به قصر سبز نمی‌رسند بالاخره به اونجا رسیدند همه برای دیدنشون بیرون دویدند شاهزاده هم از وسیله نقلیه‌اش پیاده شد اتفاق عجیبی افتاد وقتی قظار رو به درخواستش به آرامی روی پله‌های قصر گذاشت با چشمان از هدقه در اومدش دید که اون ناگهان به شاهدختی جذاب تبدیل شد اون دخترم زیباش پلاچیدار رو شناخت که با لطافتی بسیار بهش خوشامد میگفت. شادی اون حد و اندازه نداشت. با اشتیاق زیاد دنبالش راه افتاد و وارد قصر شد. اون بی میخواست بدونه چه چیزی پلاچیدار رو به اونجا آورده. به هر حال مجبور شد برای شنیدن داستان شادخت حوصله کنه. چون ساکنان قصر سبز وقتی شنیدند که قول کشته شده حکومت اون سرزمین رو به شاهزاده پیشنهاد کردند و شاهزاده ویوگین مجبور شد مدت زمان طولانی حرفها و تعارفهاشون رو بشنوه البته اون گاهی با رعایت ادب حرفهاشون رو قطع میکرد تا کوتاهتر حرف بزنند بالاخره فرصت پیدا کرد که پیشه پلاچیدا بره اون هم بلافاصله شروع کرد به تعریف ماجراهای خودش بعد از رفتند سعی کردن وادارم کنن که اصول حکومت رو که واقعا برام که سالت آور بود یاد بگیرم. من از لولوته تقاضا کردم که منو با خودش ببره و اون هم پذیرفت. اما اصلا تمایوری به این کار نداشت. اون منو در حالی که بر روی تخت دلخوا هم نشسته بودم به قارخانه خودش برد و من چندین روز رو با خاطری خوش در اونجا گذروندم پرتو سبز و روشن آرام بخشی که مثل درختار درختزار زان در چشمه بود به من آرامش میداد. وزوز زنبورها و ریزش آب برام لذت بخش بود اما دریق لولوته مجبور شد به گرده همایی پریان بره. اون با پریشان حالی برگشت و به من گفت که اغماز اون در مورد من براش خیلی گرون تموم شده و شدیداً مورد معاخزه قرار گرفته و بهش دستور دادند منو در اختیار پریمیر لیفیشه قرار بده. مسئولیت مراقبت از تو هم به اون سپرده شده. به اون دستور اکید دادن که در کارش دقت کنه. شاهزاده حرفش رو قطع کرد و گفت چه وظیفه خوبی. اگه مراقبتم به اوده اون باشه قسم میخورم که حاضرم با هر ماجرایی روبرو بشم. حالا داستانت رو ادامه بده. بعد من هم همه ماجراهام هم رو تعریف میکنم. اون وقت میتونی در موردشون قضاوت کنی. شاه دخت ادامه داد اول از دیدن گریه خیلی اما زود فهمیدم که با اندوه و قم کاری از پیش نمیبرم پس فکر کردم که بهتر آروم باشم کمی بعد از اون پری میرلیفیشه را دیدم اون سوار بر اسب تکشاخ تنومدی پیشم اومد کنار قارخانه لولوته توقف کرد و دستور داد که منو بهش بسپارند لولوته با شنیدن این حرف به تلخه گریه کرد و بارها و بارها منو بوسید اون جرئت نافرمانی نداشت من بر اسب تکشاخ سوار شدم و در پشت میرلیفیشه نشستم اون به من گفت خوب دختر کچولو منو محکم بگیر تو که دوست نداری گردنت بشکنه با تمام قدرتم اون رو محکم گرفتم چون اسب حراسانگیزش چنان سری میتاخت که نفسم داشت بند میومد بالاخره در مزرعهای بزرگ توقف کردیم کشاورز و همسرش همین که پری رو دیدن به سمتش دویدند و به ما کمک کردند که پیاده بشیم من فهمیدم که اونها پادشاه و ملکه بودند که پریان به دلیل قفلت و کاهلیشون اونها رو مجازات میکردند میتونی تصور کنی که من اون موقع از شدت خستگی داشتم میمردم اما میریفیش پافشاری می کرد که قبل از هر کاری به تک شاخش غذا بدم برای این کار مجبور بودم از نردبانی بلند در انبار کا بالا برم و پایین بیام و هر بار یک دستهک با خودم بردارم این کار رو بیست و چهار بار انجام دادم هرگز هرگز قبلا از این کارهای خسته کننده انجام نداده بودم الانم که فکرشو میکنم بدنم میلرزه تازه همش این نبود به همین نحو مجبور بودم 24 مرتبه هر بار یک دسته کاه به استبل ببرم و خوراک شبانه اسب رو آماده کنم بعد از اون واقعا فکر کردم کارم تموم شده و میتونم با خیال راحت استراحت کنم اما من کجا و خواب کجا قبل از هر چیز باید بستری برای خودم و بستری هم برای پری آماده میکردم و پردهای دورش رو میبستم چند کار دیگه هم مونده بود که باید انجام میدادم در وقتی کاملا خسته و گفته شدم به من اجازه دادند که به بستر برم بدون اون که مثل گذشته لباس خواب بپوشم مثل مرده ها دراز کشیدم بعد وقتا متوجه شد و در حالی که به خواب نازی فرو رفته بودم منو بیدار کرد من هم سعی کردم از زیر کار در برم بس فقط ردام رو درآوردم در واقع با اطمینان میگم که همیشه راهی برای نافرمانی پیدا میکردم درسته که هر کسی بیشتر اوقات سخت سرزنش میشه اما مواقع هم پیش میاد که از دردسر رها میشه با شروع سپید دم میرلیفیشه بیدارم میکرد و وادارم میکرد چندین بار به استبل برم و براش خبر بیارم که تکشاخ شب رو چطور سر کرده و چقدر کاه خورده بعد از اون میخواست بهش بگم که چه ساعتی از روز هست و آیا اون روز روز قشنگی هست یا نه خیلی آهسته کار میکردم و وظایفم رو بد انجام میدادم بالاخره اون پادشاه و ملکه رو صدا زد و بهشون گفت امسال از هر داتون خیلی راضیم. اگر میخواد به قلم رو به حکومتتون برگردید باید همچنان از مزرعه به خوبی مراقبت کنید در زمین به خاطر من از شاهدخت خوب نگهداری کنید و بهش یاد بدید که برای دیگران مفید باشه وقتی برگشتم دلم میخواد که اون دست از اشتباهش برداشته باشه اگر اینطور نباشه اون با نگاهی جدی حرفش رو تمام کرد سوار دشمنم یعنی تکشاق شد و به سرعت ناپدید شد بعد پادشاه و ملکه رو به من کردند و پرسیدند که چیکار میتونم بکنم من با لحنی متقاعد کننده جواب دادم هیچ چیز مطمئن باشید اما اونها درباره کارهای مختلف توضیح دادند و سعی کردند سر دربیارند که کدومی که از اون کارها مطابق ذوق و سلیق است بالاخره از اونها خواستم که دست بردارند و دنبال این نباشند که چه چیزی با سلیقم جوره اگر اونها واقعا میخوان با من مهربون باشن بزارن که به بستر برم و بخوابم و سر به سرم نگذارن که فلان رو انجام بدم در نهایت تعجب اونها اجازه دادند که برم و بخوابم همینطور بعد از اینکه غذا خوردن ملکه مقداری هم برای من آورد البته صبح سود به بالینم اومد و با لحنی عذرخواهانه گفت فرزند دلبندم میترسم تصمیم گرفته باشه که امروز از جات بلند نشی خوب میدونم که کاری نداشتن و لم دادن چقدر دل دلچسبه زمانی که پادشاه و ملکه بودیم اصلا کاری انجام نمیدادیم و از صبح تا شب بیخیال بودیم صادقانه میگم که دلم میخواد اون روزهای شاد هرچی زودتر برگردن. اما الان اون روزها دورند و تو با اون روزها فاصله داری از حرفهای پری فهمیدی که اگر از اون اطاعت نکنی اتفاقات بدتری پیش میاد از تو میخوام که پایین بیای و با ما صبحانه بخوری برات مقداری خامی خوشمزه کنار گذاشتم واقعا برام خسته کننده بود اما چون چاره ای نداشتم پایین رفتم ولی صبحانهای که آماده کرده بودند تموم شده بود اونها داد وقار را انداختند که حالا میخواید چیکار کنی و من بیهوده جواب دادم هیچی آیا این شما رو راحت میکنه بانو بالاخره ملکه یک دو و حدود دو کیلو کنف روی تخت سنگی برام اوورد و برای مراقبت از گوسفندان منو بیرون فرستاد کاری که اصلا خوشایندم نبود. پس با میل و رغبت بسیار وسایلم رو جمع کردم و در حالی که اصلا تمایلی نداشتم تصمیم گرفتم که از اونجا برم. هنوز مسافت زیادی رو طی نکرده بودم که به ساحلی پردرخت رسیدم. به نظرم جای جذابی اومد. با آرامش خاطر روی علف‌ها دراز کشیدم و دسته کنف رو به جای بالش زیر سرم گذاشتم و راحت خوابیدم. انگار که اصلا چیزی به نام گوسفند در دنیا وجود نداره. گوسفندان به میل خودشون اینجا و اونجا میپلکیدن انگار چوپانی وجود نداره به هر چمنزاری میرفتن و حتی به جاهایی که قداغن بود سر میزدند و میچریدند بالاخره یک کشاورزان که دیدن گوسفندان بلوا به پا کردن داد و فریاد سر دادند بالاخره این هیاهو به گوش پادشاه و ملکه رسید اونها بیرون دویدند تا از علت اون همه آشوب سر در بیارند بعد گله رو جمع کردند برای جلوگیری از ضرر بیشتر خیلی سری دست بکار شدند و خسارت روستاییان رو پرداخت کردن. من راحت و آرام دراز کشیده بودم و فرارشون رو تماشا می کردم. جام خیلی راحت بود و تصمیم داشتم تا موقع که به سراغم نیمدن همونجا بمونم. بالاخره خسته و از نفس افتاده پیدا کردند و مجبورم کردن از جام بلند بشم و دنبالشون را بیفتم. اونها شدیدن منو به باد سرزنش گرفتن. و دیگه به من اعتماد نکردن و گله رو به دستم نسپردن از این به بعد هر کاری که به من میدادن نتیجه همیشه یکی بود من چنان کار خرابی میکردم که حتی آدمای صبور هم از کوره در میرفتن روز بعد از مزرعه فرار کردم چون میترسیدم که ملکه‌تنبیهم کنه وقتی به رودخانه رسیدم که پادشاه در اون ماهیگیری میکرد قایقی دیدم که به درختی بسته شده بود پا به قایق گذاشتم و تناب رو باز کردم و به آرامی با جریان آب پیش رفتم قایق خیلی آرام روی آب سور میخورد و من بسیار راحت بودم اما چشم ملکه به من افتاد و در ساحل رود دوان دوان بره افتاد و فریاد میزد قایقم قایقم شوهرم بیا شادخت کوچیک رو که با قایقم فرار میکنه بگیر جریان آب منو دور کرد دیگه فریادهای ملکه رو نمی‌شنیدم. من با صدای آرام امواج و, و نجواهای درختان به خواب رفتم تا اینکه قایق یک دفعه ایستاد و متوجه شدم که به کنار چمنزاری شاداب گیر کردم خورشید می درخشید در فاصله چند چندخانه کوچیک دیدم که به نظر می رسید با یک طرح و شکل ساخته شدن خیلی گرسنه بودم پس به سمت خونه ها رسپار شدم خیلی جلو نرفته بودم که دیدم فضا و پر از اشیای براق و درخشان شده که ظاهرا به هم چسبیده بودن. نمی نمیتونستم ببینم که از چه چیزی آویزون هستند شدم چشمم به تنابی ابریشمی افتاد که از بالا آویزون بود اون رو کشیدم بلافاصله در تمام چمنزار صدای هماهنگ ناقوس‌های نقره‌ای تنین انداخت بازتاب صدا به قدری زیبا بود که من همونجا نشستم و گوش دادم و به ناقوس‌ها نگاه می‌کردم که زیر تابش خورشید برق می‌زدند و در نوسان بودند پیش از آنکه از صدا بیفتند دسته بزرگی پرنده پیدا شدند هر کدوم بر سر ناقوسی نشستند و با ترانه هاشون بانگ ناقوز ها رو همراهی کردند. بعد از پایان این موسیقی سر بلند کردم و بانوی بلند قد و با رو دیدم که به سمتم می اومد. تعداد زیادی پرنده دورش حلقه زده بودند. اون گفت دختری کوچیک، تو کی هستی که جارت کردی به جایی بیای که هیچ موجود میرای اجازه ورود نداره؟ تو پرندگانم رو به زحمت انداختی و ادامه داد اما اگر کاری از دستت بر بیاد شاید با حضور در اینجا یک جوری کنار بیایم. من جواب دادم بانو، به شما اطمینان میدم که من هرگز نمیخواستم مزاحم پرندگانتون بشم. فقط از شما تقاضا دارم به خاطر خدا هم که شده چیزی بدید تا بخورم. اون جواب داد قبل از اون که تو رو به جایی که لایقش هستی بفرستم برات قضا میارم. بعد چند زاغ رو که از زیر دستانش بودن فرستاد تا چند نو شیرینی بیارن. در همین حال بقیه پرندگان میوه‌های رسیده آوردن. در واقع صبحانهی حسابی خوردم دوست نداشتم اینقدر تند و سری از من پذیرایی بشه. عجله کار خوبی نیست به این فکر افتادم که خیلی خوبه که در اون سرزمین دوست داشتنی قامت کنم نظرم رو با بانوی با در میان گذاشتم اما اون با لحنی توه گفت فکر میکنی اجازه میدم اینجا ای قامت کنی اون هم تو چرا فکر میکنی بودنه در این سرزمین خوبه اینجا همه باوشند و هرکس سرگرم کاریه نه نه. من از مهمان نوازی در حقت کوتاهی نکردم با گفتن این حرفها، صورتش رو برگردوند و تناب ابریشمی رو با شدت کشید اما به جای آهنگی شاد جیرینگ جیرینگ نفرتنگیزی شنیدم که منو خیلی ترسوند در یک لحظه پرندگی سیاه تنومندی ظاهر شد و در پای پری فرود اومد و با صدایی هراسنگیز گفت خواهرم از من چی میخوای؟ اون جواب داد از تو میخوام که این شادخت رو پیش پسر برادرم قول سبز ببری. از طرف من از اون بخوا که روز و شب اون رو به کار بافت پردههای نقشدار زیبا بگماره با این حرف پرنده بزرگ منو در چنگ گرفت و بیتوجه به ناله هم به پرواز درومد شاهزاده ویویهان حرفش رو شوقت کرد شوخی میکنی دخترمون همه اینا باید به کندی اتفاق افتاده باشه من همه چیز درباره اون پرندگی سیاه و کارها و محل زندگیش میدونم پلاچیدا با آسودگی جواب داد اگر اینطور فکر کنی من حال و حوصله بحث ندارم شاید این همون پرنده نبوده به هر حال اون منو با سرعتی غیرعادی به طرف قصر برد و به آرامی در اینجا که تو مالکش هستی فرود آورد ما از یکی از پنجره ها وارد شدیم وقتی پرنده منو به دست قول سپرد پیام پری رو به اون داد و از اونجا رفت بعد اون رو به من کرد و گفت پس تو موجود تنپروری هستی بسیار خوب ما باید تو رو به کار بکشیم تو اولین کسی نیستی که تنبرش رو درمان کردیم ببین تمام مهمانانم چقدر فعال و سرگرم کار هستن. من بالا رو نگاه کردم و چشمم به سرسرای بسیار سی افتاد که پر از دارهای بافت پرده دوک کلافهای پشم الگوها و دیگر لوازم دوخت و دوست بود در برابر هر دار حدود دوازده نفر نشسته و سخت مشغول کار بودند با دیدن این صحنه وحشتناک از حال رفتم وقتی به هوش اومدم از من پرسیدند که چه کاری بلدم اونها نتیجه نگرفتند چون مثل قبل پاسخ دادم و با اشتیاق بسیار شدید جمله همیشگی خودم رو بر زبان آوردم. هیچ چی. گفت پس باید کاری یاد بگیری. در زیر این آسمون برای هر کس کاری هست که انجام بده. موضوع نقش هایی که روی پرده می بافتن قصه های مورد علاقه پریان بود. اونها سعی می‌کردند به من چیزی یاد بدن تا کمکشون باشم. اما هرچه از اولین اول من بیشتر و بیشتر عقب نشینی کردم حتی ساده ترین کوک های روی پاچه رو هم یاد نگرفتم به هر طریق که میدونستان تنبیهم کردن پول هم بیهوده باق و حیوانتش رو که دور دور اون حصار کشیده بود نشونم داد اون بچایی رو که کار نمی کردن به ایوون مختلفی تبدیل میکرد هیچ چیز تأثیری به حالم نداشت بالاخره کوتاه اومدند و کاری سبک یعنی آبوردن آب برای رنگامیزی پشم ما به من واگذار شد در همین کار هم خیلی کند پیش میرفتم بلخره یک روز صبح قول از گوره در رفت و منو به قزال تبدیل کرد همین که منو در باغ حیوانات انداخت سگی با خشم به سمتم حمله کرد من فرار رو برقرار ترجیح دادم و از محبته بیرونی قصد در رفتم قول از ترس اینکه گم بشم شیر سبزشو فرستاد تا منو به هر ترتیبی که شده برگردونه شیر باید منو میخورد یا دستگیر میکرد یا هر چیز دیگه اما نباید میگذاش از اونجا دور بشم از وقت خوش تو رو کنار چشمه دیدم شاه دخت به حرفاش ادامه داد و گفت چقدر لذت بخش که همیشه با خیال راحت در ای بشینم از بس سعی کردم چیزی یاد بگیرم خسته شدم شاهزاده ویوین هم گفت که اون هم مدتها آرام و بیکار بود اما این اصلا براش سرگرم کننده نبود بعد همه ماجراهایی رو که براش اتفاق افتاده بودن یک نفس تعریف کرد اون گفت که چطور با بانو صبر خونه شده چطور با غیبگو مشورت کرده و چطور با کشتی کاغذی سفر کرده بعد از همه این حرفها شانه به شانه هم رفتن تا زندانیان قصر و همه شاهزادگان و شاهدوختانی رو که در باغ حیوانات بودن آزاد کنند. وقتی قول سبز به حلاکت رسید اونها شکل طبیعی خودشون رو به دست آوردن همونطور که میتونید حدس بزنید همه اونها بسیار ممنون شدن. شاه دوخ پلاچیدا از اونها تقاضا کرد که هرگز هرگز حتی یک کوک به پرده نزنن و تا زمانی که زندن کار نکنند اونها هم بیدرنگ در محوطه قصر یک بازی حسابی به راه انداختند و با خیال راحت تمام پرده‌های نقش دار و داروها و چرخ‌ها گریسندگی رو به آتیش کشیدند بعد شادوخ در کنارشون نشست و به اونها هدیه که با ارزش ویوین هم همین کار رو کرد حیاوی شادی و سرور در تمام قصر سبز پیچیده بود هر کسی نهایت تلاشش رو میکرد که به شاهزاده و شاهدخت خوش بگذره. با وجود این غالبا اشتباه میکردند، چون ویوین و پلاچیدا هرگز هم عقیده نبودند و هر کس نظر خاص خودش رو داشت. برای همین همه چیز قاطی شده بود. ساکنان قصر اغلب خیلی به کندی از شاهزاده فرمان میبردن. گاهی اوقات مثل برق به هر طرف میدویدن تا کاری رو انجام بدن که شاهدخت اصلا دوست نداشت. بلاخره با گذشت زمان به این نتیجه رسیدند که با هم کنار بیان و در اون آشفت بازار در مورد کارهاشون مشورت کنند. به این ترتیب پسرم و دخترم و, دخترم و کم کم به هم علاقه مند شدند. بیوگین به خاطر پلاچیدا هم که شده بود کاملا صبور شد و پلاچیدا هم به خاطر اون دست به تلاش و پوشش ای میزد. حالا پریان که با علاقه ناظر تمام این جریان ها بودند به این نتیجه رسیدند که زمان ک اونها میخواستند با آزمایشهایی بیشتر بفهمند که آیا این رابطه‌ی نیکو ادامه خواهد یافت و آیا اونها همدیگر رو واقعا دوست دارند یا نه بعد ترتیبی دادند که پلاچیدا به شدت تب کنه و ویوین از ناراحتی قصه بخوره و پریشان حال بشه اونها باعث شدند که هردوی دوی اونها نگران همدیگه بشن بعد سر فرصت اونها رو از هم جدا کردند پری میرلی فیشه در برابر پلاچیدا ظاهر شده گفت همین الان شاهسادی ویوین رو دیدم به نظر می اومد که خیلی مریض احباله. شاه شاهدوخ جواب داد افسوس بانو اگه میتونی درمانش کن میتونی منو به مزرعی برگردونی یا قول سبز رو دوباره زنده کنی من در هر حال فرمان بردار شما خواهم بود پری گفت اگر واقعا میخوای اون بهبود پیدا کنه باید موشی که یورت میره و صحره بالزن رو بگیری و بران بیاری فقط بدون که وقت خیلی تنگه تا حرفش تمام شد. شاهدخت شتابان به سمت دروازه قصر رفت پری اونقدر نگاهش کرد تا از نظر دور شد اون لبخندی کوچیک زد و به جستجوی شاهزاده اومد شاهزاده التماس کرد که اون رو به قصر سیا یا به قایق کاغذی برگردونه در عوض زندگی پلاچیدار رو نجات بده پری سرش تکون داد و نگاهی جدی بهش انداخت اون کاملا با شاهزاده موافق بود شاهدخت در بد وضعی گیر کرده بود پری گفت اگر بتونی موش کور گلگون رو پیدا کنید و به اون بسپاری بهبود پیدا میکنه حالا نوبت شاهزاده بود که با شتاپا به سفر بگذاره اون قصر رو ترک کرد و از سر اتفاق دقیقا در جهتی مخالف مسیر پلاچیدا بره افتاد حالا میتونید سرگردانی اون دو دلدادی وفادار رو در شبها و روزها تصور کنید شاه در جنگل همیشه در حرکت بود همیشه گوش میداد و با شور و شوق به دنبال دو موجودی بود که به نظرش میرسید یافتن اونها خیلی مشکله اما دست از جست بر نداشت از طرف دیگه شاهزاده دائما از چمنزارها میگزش و چشم زمین دوخته و با هوشیاری هر حرکتی رو در بین موشهای کور زیر نظر گرفته بود مجبور بود به آهستگی و روی پنجه پا رابره مجبور بود که نفسش رو در سینه حبس کنه غالبا ساعتها مثل مجسم بی حرکت نیستاد. آتش اشتیاقش برای به دست موش کور گلگون در وجودش زبانه میکشید اما موافقیتی نداشت. هرچی میگرفت گرفت موشهای سیاه یا معمولی بودن. عجیبی بود که اصلا تحملش رو از دست نمیداد و به نظر میرسید در جست جوش همیشه آماده است و خستگی نمی شناسه. خب این دگرگونی شخصیت اون یکی از عادی ترین معجزات عشق بود. نه شاهزاده و نه شاهدخت به هیچ چیز جز هدفی که داشتن فکر نمیکردند اصلا توجهی نداشتند که پا به چه سرزمینی گذاشتند بلاخره یک روز مات و مبهود بعد از جستجوی طولانی و خسته کننده هر دو در یک لحظه فریاد سر دادند بلاخره دلدارم رو نجات دادم بعد با تشخیص صدای همدیگه به جستجو ادامه دادند و با شور و شوق دیوان بار برای دیدار با همدیگه شتافتند زمانی که در لحظه دلنشین چشمشون به هم دیگه افتاد، از تعجب زبانشون بند اومده بود. اونها از سر اتفاق در قلمرو پادشاه گریدلین بودن. پادشاه به دیدارشون اومد و اونها رو شناخت و شادمانه خوشامد گفت. بعد اونها به جستجوی خودشون برای پیدا کردن موش پوره گلگون سهره در پرواز و موشی که گرتمه میرفت ادامه دادند. اونها ناپدید شدن و به جاشون بانوی زیبا که اون رو نمیشناختند، پرندگی سیاه و قول سبز ظاهر شدند. پادشاه گریدرین به بانو چشم نوخته بود اون فریادی شادمانه از طای دل کشید و به سمت بانو رفت چون اون کسی جز همسر ناپدید شدش سنتورینان نبود که شاگرد در باره در سرزمین پریان روزی مطالبی بشنوید بعد پرندگی سیاه و قول سبز شکل طبیعی خودشون رو به دست آوردن چون اونها افسونگر بودند بعد از اون کالیسکه های لولوته و میرلیفیشه پرواز کنن از راه رسیدند. همه از دیدن همدیگه خوشحال شدند. چون هر کس به محبوب خودش رسیده بود، همه با هم خوشبش بش می‌کردند. حتی افسونگران از اینکه به شکل طبیعی خودشون برگشته بودند، از خوشحالی در پوست خودشون نمی‌گنجیدند. اونها به قصد برگشتند و بلافاصله مراسم جشن عروسی شاهزاد ویوگن و شاه‌دخ پلاچیدا رو با شکوهی بس برگزار کردند. پادشاه گریدرین و ملکه سنتورینا با وجود اون همه تجربه در فرمان فرمانروایی دیگه میلی به حکومت نداشتند پس با رضایت خاطر کنارگیری کردند و به مکانی آرام رفتند و تاج و تخت رو به شاهزاده و شادخت جوان که مردم اون سرزمین اونها رو از جان و دل دوست داشتند سپردند اونها هم خوشبختی پایدار خودشون رو در خورسندی مردم کشورشون میدیدند خب؟